حکایت جوانی خردمند از فرون فضایل هزی وافر داشت و تبعی نافر، چندان که در محافل دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی، باری پدرش گفت، ای پسر، تو نیز اون چه دانی بگوی، گفت ترسم که بپرسند، از آنچه چه ندانم و شرمساری برم، نشنیدی که صوفی میکوفت زیر نعلین خیش میخی چند آستینش گرفت سرهنگی که بیا نعل بر سطورم بند نگفته ندارد کسی با تو کار ولی که چو گفتی دلیلش بیا